درود شنوندگان و هموطنان عزیز فرشید نسلوی هستم انووینی خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو به سم شما میرسونم عفه بینمیلل میگوید سیاست اعتادی اروپا پناهجویان را به مخاطره میاندازد سازمان عفه بینمیلل اتادی اروپا را به ناکامی در حفاظت از آن عد پناسجوانی متهم ساخت که میخواهند از طریق مدیترانه را به ایتالیا این سازمان حامی حقوق بشر همچنین از همکاری با نیروهای ساحلی لیبی خشنید شده است سازمان آفا بینمیرلار در برلین پایتخت آلمان گفت اعطاد اروپا آگاهانه به سوی مرگبارترین سال در سواحل خود به پیش می رود. رینه ویلدرانیک کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور آفریقای شمالی گفت در سال میلادی تا حال بیش از 2000 انسان در مدیترانه غرق شدند به قول وی اتحادیه اروپا امکانات آن را دارد تا مرگ و میر گروهی را پایان ببخشد ویلدانگل افزود که در اتحادیه اروپا در سال 2015 های خود را برای نجات دریایی افزایش داده و ساحل عملیات خود را در تانه نزدیکی های آبهای لیبی گسترش بخشیده به گفته وی این امر سبب شد تا شمار کمتری انسان‌ها در آب جان بدهند اتحادی اروپا ترهی جدید را برای مقابله با موجه مهاجرت به ایتالیا ارائه کرده همزمان این اتحادیه از همه دولت های عزوش خواسته تا ایتالیا و یونان دو کشور ورودی پناهجویان را برای مقابله با بحران مهاجرت یاری رسانم اتحادی اروپا تلاش میکند که به تعهدش برای کم, کم ساختن فشار مهاجرت بر ایتالیا و یونان عمل کند به این منظور از کشورهای عضو خواست که سهمیشان را از مهاجران در این کشورها قبول کنند اما چندین دولت عضو این اتحادیه مخصوصا کشورهای شرق اروپا تمایل بسیار کمی برای عملی ساختن طرح تقسیمی برای جوان نشان دادند و یا کلا با آن مخالفند یک خبر از انگلیس گزارش تازه درباره قتل بیژن ابراهیمی پناهجوی ایرانی پلیس میتوانست مانع قتل بیشود کمیسیون رسیدگی به شکایات از پلیس بریتانیا در گزارشی درباره قتل بیژن ابراهیمی پناهنده ایرانی ساکن شهر بریستون منتشر کرده به این نشه رسیده است که پلیس می توانست جلوی کشش شدن او را بگیرد اما در این کار ناکام مانده و این ناکامی نشان از جانبداری نجات پرستانه پلیس چه به صورت خداگاه و چه به صورت ناخداگاه بوده است این گزارش انتقادی همچنین می گوید که در واکنش پلیس به درخواست های کمک آقای ابراهیمی نشانه های آشکار نژادی دیده شده است ویژن ابراهیمی پناهنده ایرانی را و معلول ساکن بریتانیا چهار سال پیش به طرز فجیعی در خانه‌اش کشته شد. جیمز لی همسایه آقای ابراهیمی او را به قصد کشت کتک زد و جسدش را بیرون خانه‌اش به آتش کشید. قاتل به حبس ابد محکوم شد و دو افسر پلیس در دادگاهی در بریستون به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه در ارتباط با این پرونده محکوم و زندانی شدند. در گزارش تازه کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت پلیس IPCC، آمده که پلیس منطقه اون و سامرست بریتانیا در طول 7 سال، در, در طول 7 سال پیش از مرگ بیژن ابراهیمی به کررات در انجام وظیفهش کوتاهی کرده. بنابراین گزارش معموران پلیس بارها های کمک آقای ابراهیمی از جمله تماس آخر او را یک ساعت پیش از قتلش نادیده گرفته و او را فردی دروغکو و دردسرساز می‌دانستند. رئیس پلیس منطقه اوئن و سامرست به دلیل تنها گذاشتن بیژن ابراهیمی در زمانی که او نیاز به کمک داشته اضخوایی کرده است اتریش آماده است برای کنترل موج مهاجرت به مرز ایتالیا سرباز بفرستد. وزیر دفاع اتریش گفته که ویان کنترل را در مرز این کشور با ایتالیا وضع کند و به این منطقه سرباز میفرستد. این در حالی است که سازمان ملل گفته است که های اندکی از کمتر شدن موج مهاجرت به اروپا دیده شود. پیتر داسکوزیل وزیر دفاع اتریش روز دوشنبه گفت چنانچه موج مهاجرت در طریق دریای مدیترانه اروپا کاهش نییابد کشورش آماده است تا به سرعت کنترل را با مرز با ایتالیا واس کند و به این منظور 750 سرباز بفرستد دوسلزیل در حالی که این اظهارات را بیان داشت که سازمان ملل متحد روز دوشنبه پژوهشی را برای را منتشر کرده که نشان میدهد طی سال جاری میلادی بیش از 85 هزار مهاجر از طریق مدیترانه به بیتالیا رسیدند. این شمار 20 درصد افزایش را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان میدهد در این گزارش گفته شده که موج مهاجرات احتمالا فقط در حال افزایش است یک خبر از آلمان آلمان نارسایهای بزرگ امنیتی در اداره مهاجرت از 3700 نفر پناجو اثر انگشت عکس هویت گرفته نشده تا به حال چندین بار از کمبودها در اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی گزارش شده اما حالا بر اساس گزارش رسانه ها های امنیتی در این اداره بزرگتر از آن است که تا به حال تصور میشد روزنامه نورنبرگر نخراشن در شبکه دوم تلویزیونی آلمان زد دی نارسایی از نارسایی‌های امنیتی در جریان سبت اطلاعات پناهجویان در اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگان گزارش کرد این سه شنبه از یک ایمیل داخلی عواصدم ماه جون در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان نقل قول کردند در این اطلاعات گفته شده که از چندین هزار متقاضی پناهندگی نه شخصا تحقیق شده است و نه از آنها عکس و انگش گرفته شده براساس این اطلاعات گروهی به اصطلاح خطرناک شامل 3638 متقاضی پناهندگی در کشورهای سوریه و عراق بودند که در مورد بررسی تقاضای پناهندگیشان به صورت کتبی رسیدگی شده و تصمیم گرفته شده است بر اساس این گزارش از متقاضیان پناهندگی عراقی و سوریایی که هویتشان روشن نیست باید بعدا ثر انگشت و عکس گرفته شود که قرار است در پایان با داده های بانک اطلاعاتی اداره امور جنا آلمان فدرال مطابقت داده شود. اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی در پاسخ به سوالی در این رابطه گفت که در مواردی بعد از 15 ماه جولای حسال سال جالی رژسر خواهد شد. این اداره افسوده که چند هزار نفر شناسایی شدند که باید از آنها از انگشت و عکس گرفته شود. گروهی که در مورد بررسی تقاضاییشان به صورت کتبی تصمیم گرفته شده، به ویژه خطرناک عنوان شدند. زیرا از این پناهجویان شخصا در اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی تحقیق صورت نگرفته است، بلکه آنها باید یک پرسشنامه را به صورت کامل پر میکردند که نکردند. و یک خبر خبر مهم از ایتالیا ایتالیا اتحادیه اروپا را تهدید کرد که کشتی های خارجی عامل مهاجرین نجات یافته را در آینده از آمدن به بندرهایشان، هایشون بندرشان خواهند کرد با افزایش شمار مهاجرانی که به ایتالیا میرسند مقامات این کشور گفتند که به تنهایی نمیتوانند به این مشکل رسیدگی کنند وزرای داخلی چند کشور اتحادیه اروپا میخواهند برای برون رفت از این مشکل در پاریس با هم مشورت کنند. وزرای داخلی آلمان، فرانسه، ایتالیا در یک شنبه در روز یکشنبه در پاریس درباره برخورد مناسب برای حمایت از ایتالیا در بحران مهاجرت گفتگو می‌کنند. دیمیتریس اورامپولیوس کمیسر امور مهاجران اتحاد اروپا نیز در این نشست شرکت خواهد کرد بر مبنای اظهارات حکومت فرانسه هدف این است که تا به یک برخورد مورد توافق در ارتباط با افزایش شمار مهاجرین دست که از طریق دریای مدیترانه بر اروپا میآیند ایتالیا پیش از آن اتحاد اروپا را تهدید کرد که کشتیهای خارجی حامل مهاجران نشات یافته را در آینده از آمدن به بندرهایشان من خواهد کرد مقامات این کشور گفتند که دیگر توانند وضعیت را زیر کنترل قرار بگیرند آژانس مهاجرت سازمان ملل نیز از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که با, بی... با ایتالیا برای رسیدگی به موجه مهاجرانی که به سواحل این کشور میرسند همکاری کنند بر اساس آمار سازمان ملل متحد از اوایل سال جاری میلادی تا کنون بیش از انسان آباره در مسیر مهاجرت گروپا در دریای مدیترانه غرق شدند. در ایتالیا از آغاز سال جاری میلادی 73300 مهاجر را رجیستر کردند. این رقم 14 درصد بیشتر از سال گذشته در همین مدت زمانی است. لباتون خندون، دلاتون شاد، تندرستیتون پایدار و سفرهاتون پرنمک.